ویژگی سیاه مشق اندیشه یک فیثوف آن است که انسان در آن آزمایش میکند طرح میکند کم و بیش میکند میکوشد بهتر بیاندیشد آزادانه طرح تفکرش را به خود رها کند تا بازتر و یک سرتر بگوید زمام عقل را ناغه بودانه رها می کند تا خودش سر پای خودش برود و نیروهای پنهانی درونی آن را کنترل نکنند این است که در این سیاه کسی در فکر ساختن یک سیستم یک دستگاه فکری که هر جزءش به جزء دیگر پیوسته باشد نیست و این یکی از نیکی های اندیشیدن هست که انسان به هنگام بیاندیشد هنگام همیشه او را بیانگیزد تا بتواند از, از اون چه در هنگام هست با بونه خود پیوند بزند و اندیشه مناسب و نیکو به اون زمان در بیاورد امروز من چند پاره از سیاه‌مشخ‌های روزانه یک فیچو بخش دوم را برای شما میخوانم ادیان تک خدایی دارای این اندیشه غلط بودند که هر کسی میتواند فقط یک دین داشته باشد ولی هر کسی می تواند ادیان مختلف رو در خود جمع کند. نیروی آمیزنده انسان بیش از یگانه بودن دین و بی بودن هر حقیقتی است چند عقیدگی چند فلسفگی چند حزبی بودن انسان یک واقعیت عادی است انسان می تواند صبح مسلمان نیمروز مسیحی بعد از ظهر زردشتی سر شب بودایی نیم شب یهودی و در خواب بیدن باشد ما نباید به کشیم دین را به جای همه آنها بگذاریم ما باید همه ادیان را همه مکاتب فلسفی را حلقه های پی پی وجود خود سازیم اگر احورامزا اثر باز میگشت همه این ادیان را از خود میذارید تا امشاستندان او باشند ایدئولوژی ها نیز میتوانند برش هایی از زندگی روزانه باشند انسان میتواند صبح لیبرال، ظهر سوسیالیست، بعد از ظهر کندرواتیو، شب آنارشیست باشد شاید همه ادیان و احزاب از همین ویژگی خطرناک انسان هست که میترسند و از این رو میکوشند، با ادعای انحصار وحدت حقیقت خود انسان را از این گونه آمیختگی ها باز دارند انسان هزارها در دوره چند خدایی همین کار را می کرده است و در معابدشون همه خدایان با هم بودند و امروز هم باید معبد هر دینی معبد عمومی همه ادیان باشد هر که معبدی می سازد، از آن همه ادیان است فقط به این شرط باید حق ساختن معبد داشته باشند هیچ کس نباید معبد برای پرستش یک خدا بسازد هیچکس حق ندارد بنا برای یک حزب بسازد در هر معبدی همه خدایان پرستیده خواند شد در هر امارت حزبی همه احزاب حق گرد آمدن دارند ایده حنت اون که در ایرانم در فرهنگ سیمرقه بوده است جایی که همه خدایان با هم انجمن کرده اند، این که همه پیکر همه خدایان را کنار هم در یک نیایشگاه می‌گذاشتند این درست نماد این بود که همه این خدایان با هم هماهنگ میتوانند می توانند آفرینندگی بکنند با هم بیافرینند. و این یک ایده بزرگ اجتماعی سیاسی فرهنگی بود و این پرستش خدایان این ش... که شریک هم بودند و اینها که زشت ساخته می شود این سراغاز ستیزهگری و اداوت و فقط به خود حق دادن بود که امروزه بزرگترین درد جهان را تیگه کرده پاره دیگر درباره قزل است ما قزل را از دید ادبی میخوانیم ولی قزل اساسا پیشتاز تفکر فلسفی بوده است و این باعینده غزل که پیشتاز تفکر فلسفی است باید جد گرفته بشود تا جهشگاه تفکر فلسفی ما بشود غزل در ایران دامنه پیدایش پرد آزاد و آزادی پرد بود از این رو نیز بود که هر شاعری قذلی را که می سرود به نام کار و محصول ویژه خودش امضا می کرد و از خود نام می برد در غزل از احساسات خود از افکار خود می گفت و خود را آزادانه می ستود بیان که شرم از منی کردن داشته باشد و همه جهان را در خود خلاصه می کرد و در خود می دید. و خود را بلندگوی همه موجودات میکرد در قذل فرد آزادی خود را از دین و شریعت مداران و قدرت سیاسی جشن میگرد بعد سیاسی هر قذلی همین پیدایش فرد در برابر قدرت های دینی و سیاسی است اون چه در تنگ پیله قذل صداها حق وجود و پرورش داشته است اکنون میخواهد از این پیله سر برون آورد و در سراسر فضای جامعه پرواز کند پیله غزل برایش تنگ شده است پاره دیگری از همین کتاب ما وقتی در تاریخ فلسفه میبینیم که فیلسوفی بر ضد فکر فیلسوفی دیگر سخن میگوید میپنداریم که هرچه اولی گفته است از دیگری به کلی رد شده است ولی هیچ زدی ضد زد دیگر را نفی و رد نمی کند بلکه فلسفه تازه بودی برایندی را که فلسفه اول پراموش ساخته بود یا نادیده گرفته بود یا بیارزش شمرده بود ارائه دهد در این ضد اندیشی نشان میدهد که فلسفه پیشین کل اندیشه نیست بلکه فقط برای برآیندی از اندیشه است تاریخ ابکار تاریخ پیدایش و گسترش ابعاد گوناگون فکر است این است که برای آشنایی با همه ابعاد فکر باید تاریخ فلسفه را خواند تاریخ اخلاق یا فلسفه، تاریخ پیدایش و گسترش ابعاد و گوناگون اخلاق یا فلسفه است. ببینید این فلسفه با دین فرق دارد. دین توحیدی شما کتاب قرآن یا انجیل یا تورات یا گاتا را ولی در فلسفه باید تاریخ فلسفه را خواند. تاریخ فلسفه این برایندهای تفکر فلسفی را در هزاره ها نشان میدن اینها تراش های یک کریستال هستند. تا ما در ضد یک اندیشه نفی کل آن اندیشه را میبینیم هنوز به ارزش زد اندیشی دیالکتیک پاد اندیشی پی نبردیم اندیشه نوین اندیشه پیشین را به عنوان اینکه کل اندیشه یا کل حقیقت است می کند ولی به عنوان آن که آن اندیشه برایندی از کل اندیشه هست آن را می‌پذیرد تا آنجا که یک فلسفه می‌پندارد که کل اندیشه است اشتباه می‌کند و مردم را میفریبد و تا آنجا که براندی از اندیشه است ضروری است و ما را به حقیقت نزدیک‌تر می‌سازد این نکته درباره تاریخ اخ... اخلاق و دین هم صادق است ولی آنکه در این اینها هیچ کدام رعایت نمی شود کارهای دیگر من در اینجا مسئله ای را طرح کردم که سپس در کتاب هایی که درباره فرهنگ ایران نوشتم سعی کردم این پیوند رابط مفهوم را مفهوم فلسفی را با واژه در بستر فرهنگیش پی کنم و جستجو کنم و در فرهنگ ایران این سراسر این واجه های مهم را در پیوند با مفاهیمی که سپس گسترده شده اثر نشان بدهم فلسفه‌را نمیتوان از زبان جدا ساخت در اروپا هم همینجوری است فلسفه آلمان و فلسفه فرانسه با فلسفه انگلیس تفاوت با هم دارند گرانیگاه اینها با هم فرق دارد این است که صادر کردن و یا وارد کردن فلسفه از آلمان از فرانسه از انگلیس یا از امریکا درد ما را دوانه می کند فلسفه بواسطه از زبان بروید فلسفه را نمیتوان از زبان جدا ساخت فکر را باید در واژه جست فکر و در واژه گست. واژه تنها مجموعه اون معانی نیست که ما در لغت نامه ردیف به در کنار هم میابه. واژه با روان و مایه انسان کار دارد. واژه از روان انسان می و نه تنها شاخ و برگشت دیدنی، بلکه از ریشههایی پرورده می و زنده میماند که از تاریکی روان به آن میرسد عقل میکوشد که از واژه مفهوم بسازد عقل در مفهوم ریشه واژه را میبرد تا با تاریکی کار نداشته باشد این است که معانی معنای بسیار روشن در مفهوم داریم ولی زندگی را از اون زدودیم مفهوم موقعی زنده می ماند که عقل در تراشش دامنه از کلمه را مانند نور افکن فقط روشن سازد ولی این دامنه را از آن کلمه جدا نسازد از آن واژه اون روشن ساخته از بستر زنده کلمه بریده نشده است پرتوب عقل نباید تیغ برنده ای شود که هر کجا افتاد ببرد مرز میان روشنی و تاریکی چاله و گودال نیست مفهوم نبایستی از واژه مفهوم روشن نبایستی از واژه که اصلا معنایش یعنی رویدن اون چه از بن انسان میروید و گوناگونی و تیف دارد این را بایستی دقیقا در تفکرات زنده فلسفی مراعات کرد در قایان میخواهم پارهی را بخوانم که در به افکار شاهنامه میپردازد و فرهنگ سیاسی ما را نشان میدهد و این اندیشه که در شاهنامه می آورد هنوز هم اعتبار خود را دارد و در آینده هم اعتبار خودش را خواهد داشت می گوید که در قطعه 155 سه کار حکومت را نابود می سازد. یکی بیداد دوم بر دادن بیمایگان بر هنرمندان سوم پولپرستی شاه یا حکومت مدار البته این مفهوم داد و بیداد در شاهنامه فوق العاده گسترده شده است و از دید فلسفی میتوان کتاب ها درباره آن نوشت و من درباره مفهوم داد در مورد فریدون و ایراج و رابطهش رابطه گسستگی ناپذیرش از مه مقاله مفصلی نوشتم که باید جداگانه خواند که تراژدی فریدون و ایراج حالا این بیداد بر دادن بیمایه بر انسانهای هنرمند و پول پرستی شاه و حکومت که هم ما همیشه گرفتارش بود سر تخت شاهان بپیچد سه کار. شاهی در شاهنامه تنها معنای فردی, فردی شاه را ندارد بلکه شاهی اساسا معنای حکومت را دارد و از این گوسته کلمه شاه در پرهنگ ایران اساساً به سیمور گفته می است که این بحث جداگان است سر تخت شاهان بپیچد سه کار نخستین ز بیدادگر شهریار دگر آنکه که بیمایه را برکشد ز مرد هنرمند برتر کشد. سه دیگر که با گنج خیشی کند به دینار کوشد که بیشی کند مثل همه این شاهان ما در پیش و امروز آخون شاهان موبه شاهان ما که حکومت نکن اگر پادشاه آز گنج آورد این گنج به معنای پول پرستید. تن زیر دستون به رنج آورد ببینید چه عالی مطلب را اگر پادشاه آوز گنج آورد تن زیر دستان برنج آورد ملت رو میچاپم تاریخ ما این بوده است برای جمع کردن مال و منال خودشون تن زیر دستان برنج آورد کجا گنج دهقان بود گنج اوس؟ گنج دهقان یعنی کار تولیدیه روستایان و برزگران و دهخانه کجا گنج دهخان بود؟ گنج اوست وگرچند بر کوشش و رنج اوست این چیزها با رنج و کوشش هم آقوشند نگهبان بود شاه گنج برای کار شاهی کار حکومت نگهبانی این تولیدگران است نگهبان بود شاه گنج برای، یعنی گنج دهقانی در اون روزگار فقط دهقانان بودن که تولید میکردند. نگهبان بود شاه گنج برای، به بار آورد رنج برای شاه و یا حکومت باید نگهبان گنج دهقان باشد چون گنج دهقان گنج حقیقی اوست، نه اون چه برای خودگرد می آورد و در پاره دیگر میگوید در شعری دیگر سه کار حکومت را اصدوار میسازد به سه چیز هر کار نیکو شود همون تخت شاهی بیاهو شود یعنی بدون نفس می میشود به گنج و به رنج و به مردان مرد به گنج به رنج و به مردان مرد این نیست آینه ننگ و نبرد گنج درآمد ملی هست که با داد آید و میان نگهبانان کشور مردم ناچیز تقسیم شد رنج کار سپاه و ملت می باشد و مردان مرد هم نخبگان و هم سپاه سوال هستند ببینید این افکار را در یک جمله کوچک کل فرهنگ سیاسی را که پایداری هر حکومتی و حقانیت هر حکومتی بدون بسته است، در اینجا بیان می کند. به گنج و به رنج و به مردان مرد. به گنج و به رنج و به مردان مرد.